محمد اللہ <سؤال> رب العالمين و رسول الله و آلد قیدین و خالدین و معصومون و در حضور داری مقصر و عداری محمد اللہ امام خیرم و و رو با حالا پسیل نکته یا مطلب بیان میشه شد آخر بحث یک امتجامی به نکات. این نکات انشاءالله ازمین این نکتهی که دیروز شروع کنیم به تحلیل در بود محضر بود در که در میان کلمات بسید ما خیلی جا که مزدول به, به اصطلاع کلمات رو به سر این تقسیل کرده. مردود تصوری دو بسم هم مردود تصویحی مردود تصویحی با هم دو این معنا ها مردود تصویحی به نحوه ارادی استعمالی یا تحوه ارادی جدی این دو بسم ما از این مطلب رو جدی و به روزی به بخش زبورات هست بکنیم چونه خیلی منشه آثار هست در جهاز مختلف راشد به اراده جدی بی گاهی ممکن است همونطور که ظاهر بعضی عباراته مراد این باشه که وقتی موت کنده میه کلام رو به کار میبره این همون بیان مراد جدیشه یعنی اون مراد استعمالی مطابق است با مراد جدی اگر گفت آب بیار مرادش آب بیارم بیارم. اون مراد جدیش مصابقه هست با مراد استعمالی از طرح این محبت درست محبت و بنای اغلا بر همین زمینه اغلایی و این حصولا جزء های لحظی هم نیست نهی که لحظ دلالت محطب. این سیاه کلامه این بنای مطلقه از کرده چون خ از حال اون جهات خیلی که در وجود داره، یه تردیدی اجتماعی است در حساس بنام اساس تففیف و تفهمم بنا شده. اساس آخردف اساسی تففیف و تفهمه لذا به مجرد اینکه کلامه بشونن هم به برزاهلت نمیکنه برنا شد اینه که این متیکل در سر تخفیم این معناست و ما این معنی را می فهمیم و به اون نسبت می گفت رو کنیم. هم متکلم ترکیم داره هم ما که در درسی ترقیم داریم به اون نصفت هدف لغت این بود راست در مختلف سریعه برای ما از کردیم اگر متکلم یک بار یا حتی یک بار دوبارت مسلم یک کلامی بگه که ظاهرش مراد نباشه در کلمات بعدی درس مثلا این که آب بیار مراد شیخ بیارم بیار مراد شیخ بیارم می کنید که آزم متعارف صحبت نمی کنید مثلا یه بار دوم ببنان بیارم مراد شیخ این یه کنید کلماتش رو هم در معنای ظاهریش نکرد لیتا و اصولت دلالت بزی یه نوع دلالت ارادی است اینطور نیست که پشترش اراده ای وقتی که ما نتوانیم یعنی احساس بکنیم این فقط دلالت استعمالی داره یک دلالت یک مطلب ارادی پشت سروشی نیست اصولت او اون دلالت میخواه یعنی یک دست نگرمی از اون مرحله تفریم و تفاهمه اجتماعی از اون تأخید اجتماعی و قلعه آیون و قلعه دست نگرمی داریم به قلعه این مسئله که ما هم می کنیم مراد استعمالی رو بر مراد جدی یک مطلب اغلایی زیر بنای اغلایی داره اصولا تلسطه ورد همینه اصلا برای این ورده اصلا بشه هم لغت رو برای همین که از اوروب و این یک اصل اغلایی یک انتظام اغلایی حالا ازش میشه تأریم به مدلون سیاسی یا طلب مدلون هم مجتله چیه به اصلا روح ورده زبان و لغت و بیان روحش برای اینه لطه از که این در محلی اجتماعی ممکن است انسان در مراحل فرقی هم بیان به یک معنی آمی به کار اما در مسائل اجتماعی اصلا روحش همینه و این ربش هم به نظر ما به دلات لفظ نداره این مدروس به دلات وضعیه نیست ربشی به وضع ندار ربشی به دلالت نداره. این قسم اول و درست هم هست و رفیم هم به ما نحنوی ببخش دلارت نداره مسئله دوم هست چیز در قانونی نه در قرط آن این در قرط قانونی متعارفه که این ما سوزیماتش رو سابقا نهرد کردیم یک نکته قانونی داره اون نکته قانونی این هسته وقتی میبینن این مطلبی مثلا رو که هم جعل بکنن قانون رو گاهی در مقام جن جوری جن میکنن که تمام مواد مشکوخ رو بتو هم بررسی بکنه با قانون این نقطه اصلا قانون یعنی این اصلا وقتی میگیم آم قانونی عبارت از یک قاعده کلیهی که گفتی خوده برای رفع شک این کلمه ای این هم یک تعبیر صرف حقوقی داره یعنی مثلا بگید که بگه مثلا حکم زید و یا با حکم العلماء این نکته قضیه داره که شما اگر شک کردیم مثلا عادل فاسق یا عادل اکرام بکنید شما این شکتون رو با این برداری خب متوجه بفرمایید لذا در باب امن این نکته باید لحاظ بشه جرد ضرب قاعده کلیه لروجوه علیه حافی مقام شک و رفع شرک به ها. این باید درمه دو ولذا این شما خواهد آمد ممکن است کسی در قمومات قرآنی این رسی اشکال بکنه خواهد آمد. مثل اقوب الاغوت یعنی اشکال برای اینکه که ما تمسط به قمومات قرآنی میکنیم قموم قانونی جو فرموتیم یعنی یک قاعده کلیه تیورج و ها اندشت نیست نه این که عموم لحظی نیست عموم لحظی هست او الاغود کنه هست او خوب عموم لحظی هست پس اون نقطه قانونی در نظر این سرش اینه برای اینکه یک انتجام قانونی پیدا داشه میان یک عموم رو به کار میبرد اون بخاره در طول زمان یا بدل فاصله روی جهات معینی تخصیص می‌ذارن که فائده تخصیص هم در حقیقت اینه دقت کنید فائده تخصیص اینه که در غیر مورد تخصیص باز به اون عموم مراجعه کنید <تصحیح> مطلب روشن شد هر دو مطلب محل اشکال تو اصوله این دو تا اینا ارسال مصلاوات می‌گیرن که اصول هر دو اشکال شده دو تا رو بر الان کردم این هر دو نقطه اصول اشار شده یکی اینکه ما عموم نداریم الان توضیح شدم. یکی اینکه اگر عموم داشتیم تخصیص خود دیبان عموم مجوور نمیکنیم. این دو تا ن نه هر دو نقطه من دران بارمان اصل مسلم مطرح مون وکن نه هر دو در اصول محل ثال کرده و سوزیاتش هم گذشت به خاطر همون سیاب قانونی پس ما دو نقطه قانونی داریم یکی جهل خایده آمه هدف از جهل خایده آمه ارهانجو الهی حاید در شرک یه و رفع شرک برا دفت بکنید و نظام ما در عرقه سمسید در بست آمه خواهد اگر دهن مقاری باشه امدهی مباشر ما, ما این است چه شکی رو ما با آم برمیداریم چه شکی رو با آم برمیداریم هر شکل رو میشه با آم برداشتانه این بخشه اصولیه که وزرشن بایدونه نقطه دو بر این آم تخصیصی میخوره اون نقطه اساسیه در تخصیصی اینه ام. که در انقاط به این آم بعد از تخصیص هم مراجعه کنیم. خسنه شد نقطه اگر گفتلا تو کنید تو سابر ما بعد اگه شک کردیم مثلا فرض کنید به اینکه عالم مثلا جوان است پیر است اکثر علما شامل هست. جوان همیشه خصوص پیر منظرم رو برای رفع این شک هم باز به اکثر علما مراجعه ولو بعد از تخصیص بعد از تخصیص باز به اکثر علما مراجعه کنیم پس هدف این یک چی میشه جمعش, جمعش میشه یک اورق قانونی اورق خاص ارتبان. که در این ارتقاست این کارو رو میکنن این رو وقتی آمدن در حسون تبدیل بکنن گفتن که آم مراد استعمالی خاص مراد جدی ارتقاست میکنم این مراد جدی و استعمالی پس ما یک مراد جدی و استعمالی به معنی اول بود که این مراد قطعا اغلابی است و این در شد شاده یک مراد جدی و استعمالی دوید اصطلاح اصولی داریم روشن درید자번ه به برزن پس عام میشه مراد استعمالی بعد از تسیل میشه مراد جدی مطلق میشه مراد استعمالی بعد از تسیل میشه مراد جدی پس اینه که آهایان در اینجا این بحث و مطرح کردن مراد جدی و مراد استعمال راست دارید مثلا Luca و این هم به دلالت لفظی برمیگرده به سخون نیست سیاهی باشه چون اول گفت اکمل علم ها بعد با لاز و خیل فساق علم ها و یعنی صاحبا در موادس و وقتی صحبت از مراد استعمالی و مراد جدیست این میشه در نظر. نظره نه اون مدلول سیاهی که هر کسی رو اراده که صحبت میکنه او اصلا محل نظر نیست او اصلا دلالت لفظی هم نید. اون دلالت وگی هم نیست به لنظزم بر نمیگرده این به لظ بر میگرده دشن چبل. چ اک قما می قما مراج جدیش اینه مراد استالش اما مراد جدی که غیریر این کلمه یعنی خیر پستانن این هم باز تو خود موارد ها محل کلاب شده. من پیر اشاره میکنم از من که از اخلاق من. در کل لحظهات و اصول عبقهات بزرشتی آیم اشاره که این رو بزرزه این درستان تداره این همون بحث معروفیست که آیا آم بعد از تخصیص متعنونه به نعید خاص میشیدانه یه بحثی از بین آن اصولی ها که آیا آم بعد از تخصیص متعنون به نعید خاص میشیدانه مثلا اگه گفت اکتمال بعضا بلاتو که فساغ العلماء دیگه مفاد کلام این است اکرمل علماء غیر الفساغ اکرمل علماء غیر الفساغ یعنی عام متعنیل میشه به نقیز خاص دقیقه مشهور الان بین و حسولین ما این قبول دارم خودمان قبول که به همین فهم غرفی خاص مشهور این قبولی کردن که آم متعامل میشه به نقیز خاص عنوان پیدا میکنه. از کنه مقروم های آتونسه نصمانی و مقروم آزیا هر اینا به شدت مخالفن این تعنوان قبول نمیکنه. یکی از مبانی معروف آزیا که اینیه مخالف مشهوری در اینجا سویه ایش که تخصیص ونزله موته تخصیص عنوان نمیاره کسی بیع عمل اول و 20 سالمون دهشون یک شب فوت کردن مثلا فوت <تصفح> خب فوت ده نفر تخصیص اونها برای بعدی که نمیاره تخصیص موت نک. تا که انصافا مسئله ایشون درست میتر. در عرف در عرف قانونی تخصیص موت نمی است موت در ل... واقع واقع اتفاق افتاده افته تخصیص خون به لفظ برمیگرده تو مهام اثبات اومده این دو تا نمیشه اون در مقام واقع یک چیزه در مقام مجذور لحظی چیز دیگری تخصیص مجذور لحظی است مثل اون اراده جدی قصور اول نیست که دوست توضیح داریم پس بنابراین این مطلب اجمالاً درست اصل این مطلب که ما در عام و خاص در مطلق و مقید ما یک نوع به اصطلاح چیز داریم مراد استعمالی و جدی داریم اما حالا این توی مصادیق خارجیش اون بحث دیگریه ما تو بحث آن مخواستم متعرض شدیم چون ما ارز مثلا اگر روید آمد که قصر و وجود هاتون و اهل ها سنت گفتن واق چون درست برد ترکید می کنه ممکن آدم اول سرش رو سورت چی بوشی رو دست، ممکن اول درستاش رو برسورت چون واق درست برد ترکید ما ارز مثل بزا باید یک دری بیدیوی که پیغنبر فرمده هست که, که حتما شما باید قسل قبل از یک باشه این رو رسیمشن تحصیل یا تقیید مثلا میگن آیه اطلاق داره قید آمن و این در حقیقت این ما یک توضیح از کردیم است که اصلا تقییدی نیست مثلا در صدر اسلام آیات در زدن عمل رسول الله تحصیل میشه سهمیده میشه دقیق بکنیم یعنی اصولاً اطلاقی مطرح نیست که تقیید مطرح بشه پیغمبر هر وقت روزو میگردتن اول سواتی میشن بردست راست بردست چند نه اینکه این تقیید آمند و اصولاً آیه مبارکه فخص رو موجوه کن و ایدیه کن این نیست که یک مطلق قانونی باشه در مقام بیان باشه بگه فرق نمی‌کنه صورت اول باشه یا دستا اول باشه خوب اینه انایت بفهم. اصل شک هست اینه که بعضی از دوستانم میگن پریروز که گفتن یک آیه مطلق تخصیص زمان امام صادق میاد تغییر زمان این شاره شد باشه تغییر نیست این تصورشونه که من عرض بکنم این بحث تغییر نیست وقتی میفرمایند تخصیص اوجها کن و ایدیا کو این قاعده دنیای اسلام بود که وقتی میشن میخوانند تخصیص اوجها کن به رسول نگاه میکردن. در تهیه 23 سال پیغمبر اول سات بعد در سات وزده سن نیست تقیید نیست اصلا آیه اینجور معنا میشه در این ترهنی معنا میشه و لذاه اونی که امام صادق میتونه اول تورت در حقیقت بیان اون سنت عملی نه که امام صادق اطلاق آیه امام صادق اطلاق آیه رو تقیید میزنن ما این را میخوایم توضیح دادیم و از کردیم این که الان در زبان ها بگید میخوایم چون لغت کنه، باید بیان مزاجی آن ها باید اصلا کردیم که در زبان ما حتی بزرگان ما حتی که بگم فرض و عمر مان در زبان هایش توضیح دادیم این نیب این شوال پنی اونی رو مامانی متقاعد کرد و عمر من کرد تدوین بود نه که عمومی ایشا که الان صحابه موجودی دیگه ایشان چه نمبر اونداون بودن چجوری روز میگرفتن چجوری قسط میکردن چجوری نماز میخوندن چجوری حج رفتن سنن ایشون در زکات چی بود در انتخاب و چی بود عمال طبقه چی بود زکات رو میخوندن این بود عمر هم یه جهات که حالا جاشینده نیست میگه این من به صلاح یه یک مشکلی در دنیای یهود اهل کتاب موجود بود من تو تظاهر کردم کهشون عمرشون با فرهنگ بود با لغت عبری هم آشنا بود تورات هم به لغت می اون تفکری که از دنیای یهود بود اختلافی در دنیای یهود سر یک کتابی که مرجوز به تورات بود, بود این خیال می کرد که اگر ما بنویسیم و سنن در ما درآوریم شبیه اون میشه برمیگرده اون دعوا به دعوایی که یهودیان داشتند او چه الان آلام یه بود چه از داره اصلاف میاره؟ اونی که امرمانه شد اینه ربونی هم که اختلاف بیشتری اختلاف در دنیا اسلام تیاره شد هم اینه همه یه همه اینه اگر نباشیدون این اختلاف قصن هشتار درصد در اختلاف کردیشد یکیز بسته بین همینی کنیدن بلا؟ هزر درزم یکیز بینیدن بینیدن یکیز که نبیشید همین چیزه چیز با اون حدیث دعوت کردند، تو پیغام نفهمیدیم، ما که اسلام کردند، بدونیم اینجوری. امیر و ما که صحابه به سنن شنیده پیامبر بکنه حدیث شومیت دعایی لطیف آتا اعلام نه نه. تو من گفتم بعد از خیال شاد کلمه لحظات از زباد من صحبم پیاره بنا من نمید گفتم بعد از خیال آن بر صحبتی که برسر من اصلا بحث اول این دواس و بیاز که واضح بود اون که به نظر ما اون که کس مخواستم بیاره کس که اینید دواس و بیاز لعکت و لعکت و کتاب من تفضل. من به ذهن خود من اینه که فیغمبر و زنه دیست اینه چون فاصله این حادثه با روز قدیه هفتاد روزه از زیه جساج ایدهان محرم سی روز تا و سفر روز تا بیسای شنو سفر هفتاد روز. فاصله این دو حادثه هفتاد روزه چون در اون جا تا هم داریم می سوال که کنم سقره این کتاب الله به ما لن کرده این به ذهنش آمد که قیمه با گوهان حدیث, یعنی حدیث که رو بنیزن. اما ای ای این دو کلمه خاطر این شنیدن این که تو گنده باشه خاصه این یک کلمه ببینیم که این میاره اون قضیه کوزه داره عمر گفت نه دیگه همون کتاب بحث اثر رو هم باید وارد کنیم هر طور این بحثی به اون بحثا نداره اون میگه در تفاهومات تصورات بعضی از بزرگا بحث کتابت حدیث اصلی به اومر نداره این اشتباه بوده میگه بزرگا درست میذارن تصور این شده که عمر گروه کتاباته و این توضیح دارم چند بار اونجا شد اونجا نیست کتابات و حدیث و حدیثی از ابو سعید خدری نقل کرده که پیغمبر فرمود هر کسی از من غیر قرآن روشه بکنه اصلا ربطی به عمر نداره اون که مربوطه به عمره اون هم احتوانه اوائل خلافتش و مربوطه به امیرالمومنینه. همین رو می حالا فرصت خوبیست ما بیاییم سنن فیغمبر رو مدرون بکنیم چرا این نکته چون سنن همراه کتاب معنا می شد یا به اصطلاح اصولی ما به صورت فیل بود حضرت هم به صورت پول در بیاریم به صورت فعل بود بیاییم ما صحابه فیغمبر رو به صورت خود من به سُنّی عرض میکنم کنم قول طبیعتش حدود نداره قول حدود داره فعل نداره ولی در اصول معروفه که فعل همیشه نوع ابهام داره اجمال داره اما قول اجمال نداره اونی رو که امیرالمومنین تعامل داره من بحث کردم دو عمر اصل عمر مجل مشاورتی هم کرد از این موافق از این مخالفت تا نهایت ده در کتب این اشارات بنده که یکی از مولانا گفت بلی تا بزرگان نفهم بود در کلمات خودش هستی که در بردی که به قد آهان توجه ها نگردم به عبارت که به من گفت دیدم مشنایی مشنا هم ما به پارسی کتاب مشنا یه مثل یهودیست عبریس و علمای یهود یا به اول خود رو ربیون نمشن که ما در فارسی بیشتر به شرح و به تلمود میشناسیم تلمود شرح مشناسیم اما من تصورش این بود که اگر ما سننگو به نسی نسمه مشنا ی در مقابل تورات قرار میگیره. یه تفکری که مربوط بود از شما آشنا بود با اصطلاحات یهود یه تفکری که مربوط به اختلافات عالم یهود سه خب ربکی هم با اسلام نداشت نه تورات ربکی به قرآن داشت نه نه به منبر ربکی به میشنا داشت از زمین تا آزمان بوزن خب به خیاس نداشت ولی ازاد من انم وادون بحث نمیخواستم به شماران نمیشت دکت بکنید یه بحثی که حقیقت این تخصیص حقیقت این تغییر چیه اون بحثی رو دارد شما تو بحث آن مخاص کفتیم اینجا وارد بحث میشین اما خود این مبحث این مبحث که ما در واقع قوانی حالا واقع نظر از مثلا مطون قرآنی و مطون روایات، اصولا بشر در باب قوانی یک مراده استعمالی داره با یک مراده جدی این مصدر درسته اصلا این مصدر درسته <تص> هسته این مطلب که بشر در قوانی یک مراد استعمالی داره با یک مراد جدی و در آیات و آیات هم اجمالا آمده این مطلب حالا این مورد از او هسته این مطلب صحیحه و این دو تا مراد هم وضعی هستن از لغت برمیگرده هم مدیول سیاقی نیستن و فلسفهش هم ارکردن روی جهادی مغلن سلاح میگونه خوب دقیق کنیم قاعدتون کلی یه جیه به ها لعنج در رفع شک به ها یعنی در عموم قانونی باید این نقطه باشه هدف دارن در عموم قانونی که بیاد موارد شک رو برداره دقیق کردیم تخصیص هم که میاد یک مقدار رو بیان میکنه باز بقیه موارد شک که بگه با همون آم برداریم این دو تا مطلب که هر دو در مصور اختلاف دارن مطلب سه رو تخصیص به لحاظ لحظی به نظر ما و به نظر مرون نایمی به نبی متعنوه به نقیه خاصی میکنه این سه تا مطلب بود که ما در بودیم که بر ما رو خوی شهر ندن این بحثاتشون سابقا توان بودن از که در مرموم آزیا ها. مرمو و مرموم از آی استحانی قدس الله و ما این دو بزرگوار سندن تنگول نمیاره با با این مقاله ما رو که جوازش با تصخیص خیلی خاصه باقیه میشه منزله معتبر از افراد می‌دیم منظور آیه عاشورا همین بود حالا این معروف واقیا عاشورا که تعلیق مبارکشون همین معنا رو گرفتن تصخیص رو به منزله موس گرفتن باشه که با شاء الله هم توضیح میدید باز هم توضیح بیشتری خواهم ببینید یک مطلب در واقع یک مطلب تو مقام لفظ میاد انصافاً کلام مرحوم آزیا مرحوم هاشمی به واقع خوبه اما رقی به لغز نداره مقابل در مقابله در ساعتی که ما تخصیص رو در عرف قانونی که مقام لغز می‌گیرین این رو الان برای مقدمه سوم یه توضیحی بده ببینید ما الگوی که وارد این پس بنابر اصلی اصل این مطلبی که ایشون فرمودن آیون در اصول آورده این به عنوان یک عرف قانونی قبوله واقعا در قوانین بشری الان همینطوره وقتی یه چیز دیگه الان جای شبه نداره میان یه قوانین کلی که هر بعد از گذشت زمان دو موردش مورد خارج می کنا این که قانونی هست یعنی این جای هیچ بونه بحث نداره حالا کیفیت این در احکام شریعتی اون بحث دیگری مسئله که بحث نسخ مثلا که کیفیت نسخ شما مثلا یهود منکر نسخ بوده کیفیت این در احکام شریعت نه نیست اون بحث دیگه ای به اصل این مطلب شما در ارتقا قانونی یک به مراد استعمالی داریم با یک مراد جدی و هر دو مخدول تصدیقی این مطلب درست این مطلب قابل قبوله و اشاره ای را کردیم به تحلیلش نوع سوم از مراد جدی بگذارم خب ارثرم میاتون مفهومش رو به کار مدون از, سرم... چون دفار از کافی کاپیننده ما این توضیحاتشو قابل نوع ثقم از مراد جدی این است که هر واقعیتی برای خودش یک سلسله لازم و ملزوم و علت و معلول اینها داره آیا در اون سلسله طولی که این مراد جدی یعنی در واقع وجود داره این هم جزه مراد جدی یا نه؟ ببینید شما الان من یک مثال یک مثال اقتداری بذارم مرحوم نمرحوم بخور آردون در اول کتاب تفسیر کبیر فخرازی نشتبه یکی وقتی گفتن که از عوضو بالله و شیطان عزیز ده هزار مسئله در میان این کار این اول کتابی این کار کنه نه کنه عوضو فعله پس یه بخش فعله اینچی فائله اینچی مفعوله اینچی ارز اینچی جوهر اینچی خب این تواب حلوب اولین و آخری بکنه از در خب این جواب چه ای واضه؟ تو هم ری جالب بیل بیل باز قائل میخواست باز عرز جوهر این خیال که تو اول تو بالله ده هزار مسئله وجود داره تو هر کلامی که شما صحبت کنید این معنای چیم که خیلی ها نیم بیشتر دوشتر نیم سرد دو شهر داره که شکل من ده هزار مسئله در میانه خب واقعا انسان عجیبه خب تمام این بحثی که شما کرده این و اوتیاری در میانه شما یه جار دزیلو کویده هزار مثال از کویده مثال از دلیل نقطه کجاست اشتباه تحقیق کجاست بین مردی دلخیق با بین واقع خارجی خرید کرده این دو تا خرید شده شد تو اصول هم مشکل داره یه مثال اصولی هم این اول به هر سری که مفهوم لغت به جای دیگه مثل اگر اشک رم آیا ها یا معناشش از کلاس آکشن دزه مفهوم لغتی دیگه ببینید در وقتی باقید زید عدمه وقتی شما ستابقه زید میکنی یه شخص محیلی در خارج وقتی خودشون این شخص محیل فرطره شخص دیگه نمیده لیکن این مفهومی اشتباه همینه این مفهوم در مقابل منطوق نیست این واقع خارجی شما بچه دو برشون حسن ازمید دارید شما وقتی که اسمش میده حسن چی لحاظ میکنی؟ که این بچه اول نیست بچه دوم ای نیست این بچه دومه، ای این بچه یوم ای هست این لحاظ در واقع وجود داره اما اگر گفت مثلا به حسن پول بده آیا مخصوم شده که به بچه اول سوم و چارون نده این نکه پنگیز ما یه بحث لحظی و مدود لحظی داریم یه بحث دیگه یک واقع داریم آیا ما میتوانیم بگیم واقع مراد جدی در مقابل مراد استعمالی به کشی حالا من این گذار چند مثال دیگه خدمت یه کسی نگاه میکنه. از اون دکتر یک شخصی میگه دو لیوان آب بخوره یکی اونوزی دو لیوان آب بخوره اونوزش مفروم عرفی داره دو لیوان آب بخوره یکی واضحه بگیم جوار نداره اما شما دقت بکنید این چون شخص طبیبه ممکنه محاسبه کرده مثلا فقط مثلا اوایل پاییز اینबाब و وضع تغییر بدن در نظر گرفته و این شخص در نظر گرفته که مثلا جوان یا پیر یا بچه است زن مرد چون در هر کدوم یک مقدار خاصی نیاز به آب دارند بدنهای خاص خب طبیعتاً مثلا هر لیوان هم به تو با این لیوانه که ما داریم به تو با متعارب 250 تیسیه چون چهار لیوان یک لیتر آبه اگه مثلا بگه این آقا تشریف داده که این شخص با این ترس با این هوا این نیاز به دو لیتر آب داره. به نیم لیتر آب داره دو لیوان یا با واضحی پونست لیتر آب داره بعد ببینید گمکنه است که کسی از این هم پارو سراسر بگه مثلا چون این هست این واقعیت هست مثلا اگر این شخص رو با خصوصیتش با خصوصیت مزاجیش با خصوصیت تست با خصوصیت مکان با خصوصیت کاری که داره که کار فکریز کار بدنیست با خصوصیت سایر جسمیش، این نیاز حساب میکنه با این خصوصیت اون مقدار آبیشه میخواد چون آب جز ضرورات اولیهی بدنه نیاز بدن به آب همیشت از نیاز بدن به قضاسته انسان در اثر کپود بوده آب، بیشتر از با در رساکم بوده غذا. آب حسابش را می‌کنیم، هنور برسه طبیعی بشه. حساب آب با حساب غذا هم طرح می‌کنه. ممکن است که ما بگیم بعد از اینکه و تحقیقات دقیق انجام دادیم، بعد این شخص نگاه کرد، مقدار آب رو نگاه کردیم، دیدیم کلام این شخص کاملاً دقیق است. یعنی کاملاً واضح شد که این بدن با این خصوصیات در طی 24 ساعت به نیم آب احتیاج دیم. این هسته یه جمعی بحثی هست مثلا واضح سوال اینه که آیا این مساله به تحریر تقضی بکنی این تحریقاته و دقیق هم در میاد چون میدونی بعضی از حتی واحقین بحثی از خودش در و قدیمند و حدیثم که اگر انسان که بدن رو دقیقا بشنس مقدار نیازی به قضا به نیویی که وارد میشه مقدار غذای رو که تحلیل میکنه، کنه بقوله بدل مایت حللش رو می حساب میکنه مقدار میکروب هایی که به طور طبیعی وارد بدل میشه، مقدار زده میکروبی که بارد به طور طبیعی در درجه اول به صورت حضاب گیر کرد به صورت دارو وارد بخوره تمام رو حساب بکنه انسان نمیدیده نمیدیده اصل اولی عدم مرگه اونی که مرگه این نسبت ها به هم بخوره ولی اگر ما دقیقا تمام خصوصای سلول های بدن رو بدونیم چقدر تحلیل می چون بدن مرتب تحلیل می کنیم نداره. نداریم ولی این بدن ما یا تحلل یا تحلل مرتب باید بدن درسته اون بدن بدن باید مرتب درسته اگر اینها رو تحلیل بکنیم با میشروب های جمعای بدن میشه، شه به حساب خاص خودش با زده اصلا آنسان انسان یعنی رو عدم روی این خودش یک بخشیز در طبم جدید هم, هم قدیم آیا اصل اولی عدد و مرگه؟ کسی تمام اینجاعت رو مراعات کرد میره. یا خیر؟ با تمام این مراعات بازم میمیره؟ حالا اگر کسی آمد دقیقاً اندازه ای را از آب گفتیم ما بعد از تحلیلات فکردیف همونید بعد خیلی دقیق گفته این بدن با این خصوصی مقدار آب در سمانوز احتیاج داره به ما کن سوال اینه که این مطالبی که با ما فهمیدید آیا جزء مظلول کلامه یا این جزء متن واقعه مظلول کلام چیه؟ مظلول کلام دولیوان آب بخور این مظلول کلام آب بخور مظلول کلام اینه لیکن در متن واقعه که برمیگردیم به هر درجه که علم ما میره بالا من چون دیگه الان وقتا تمام شده بخورم باز شب میدونی که الان خیلی از تحقیقاتی که معتقلن بشر اولیه یعنی اولین مناشعه حیات و زندگی و سلول های تک اولیه 500 میلیون سال در زیر مثلا از اون ها به دوری بروش دامده یا مثلا فرصم همکنه که که اینقدر در درداشته در باشید بشونن حتی اون زمان هم در نظر میدید تویدید طبقات داره واقعه همونی طبقه داره طبقه بعد طبقه داره ممکن است این کلامی که این گفته دلالت بر یک عمق بسیار زیادی درست این امکان داره اما تمام این حرفای یک طرف مرددود جدی کلام بودن نیست آیا می توانیم بگید اینها مردود جدی است ان شاء الله فرضیهتون دیگه احتمال هم همینه این بتكون قرآن مردود لحظه نیستن اون مقدار واقعیتی که در واقع وجود داره ولی رضا هر انسانی به اندازه معلومات خودش از ورآن محشب هر حکیت به خودش. چون این عمق داره البته گاهی اوقات در بعضی از آیات یا روایات خود پیغمبر اکسن به اون عمق اولیه اولیه رست این حدیث معروفیست که پیغمبر در سال حجات الوزا فرمودن اِن از زمان قد استدار وقتا هم گذنش یا لبادیان بگم که حیعتی یوم خلق الله و سماوات هست خیلی عجیبه یعنی الان زمان برگشت به اعتدار خیلی باید که از پونسد میلیو سال رو پوش کرد دیگه از چند میلیان سال هست به قدس بگم؟ در این جزا رو چند باره از گرم من نقل میکنه از قول ابو معشر کندی که از منجمین بزرگیستان میگه من از اول حبوت آزران نزمان پیغمبر از نو هزار سال محاسبه دقیق نو هزار سال در بیدارم محاسبه دقیق کردن کلام پیغمبر نزمان و نزمان قد استدار حیعتی در هم وقتی خب این توجه رو نکره پیغمبر که حیعتی یوم خلقا با حسن محاسبه در حسن نه یوم حبوت آزران این مجوره لح این مدلول است ان عده شهور اند الله 12 شهر يوم خلقه لا این آیین رو روایت اینی که شما رو برگردونه به اولین مراحل وجود این مدلول لازمیه اما یک خاصو متخصصی دکتری در خلال کلامش یک بچگی رو گفت که وقتی بخواد تحلیل بکنی هر رفس عقب رفس عقب اقب تا رسیده به تقریباً 500 میلیون سالو سلولهای اولی که پیدا شدن به ادعای خودش این دیگه مدلول لفظی است این رو مدل تصریقی به نحوه اراده جدی بگیریم متوجه خاطر؟ یا این یک تسلسل و کلازم واقعی است؟ هر در واقعه نمو نیست اما از عالم مدلول لفظی خارج است. بیده عايز میشه مثلا خامو گفتن ورده بحث در و صلی الله علیه